حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بده بلک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم از که دل به پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا بشواکه قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبره خوش میگذره؟ چی کارا میکنین بالاخره؟ تصمیمتونو گرفتین یا نه؟ میدین یا نمیدین؟ رای دیگه. با خب دیگه این همه فکر کردن نداره که یه رأی دیگه این همه از آپولو که نمیخوای حواا کنی که نیاز به این همه محاسبات پیچیده داشته باشه. آقا الان سخف مطالبات دیگه رسیده به کف پیاده رو. دیبر همین نباید دیگه سخت گرفت. حالا امروز هم ما تخصصی میخوایم در مورد دلایل معتقدین و همتوری همینطور مخالفین شرکت در انتخابات صحبت کنیم تا بازم مسئله شفافتر بشه بلکه این سه چهار روزی که به انتخابات مونده شما را تر بتونین تصمیم بگیرین و ببینیم که به حال میخواهین رای بدین یا ندین دیگه این هم رادیو پسوردهی 988 امروز دوشنبه سه اسفنده 1394 55 دقیقه آینده که الاتا الان ازش مقدار گذشتی 54 دقیقه آینده با شمایی ابتدای برنامه سلام مخصوص داریم خدمت همه اون عزیزانی که با شرکت نکردنشون در انتخابات قصد دارن مشروعیت رژیم رو از بین ببرن و کمر جمهوری اسلامی رو بشکونن و یه سلام ویجه هم داریم خدمت همه اونایی که با شرکت در انتخابات میخوان نشون بدن که حتی شده بین علمالهدا و احمد خاتمی هم یکی انتخاب کنن میرن و انتخابشون رو میکنن و به نظرشون خود اون حق انتخاب حق انتخاب ای که دارن مهمه و اینکه انتخاب مثلا بین کی و کی و اینا این در درجه دوم اهمیت قرار داره امروز هر دوتای این تذکره رو با هم مورد بررسی قرار میدیم رو بریم <تصفيق> فارسی سلام 3 اسفند سوم اسفند هوا 30 درجه شهرستان یزد روز حالشو ببر به به به به خیلی ام عالی ما هم خالی کنین مثلا رو گرمای هوا تو ایران میدونین که هیچ حساسیتی نداره یعنی فاصات چلی نمیستونم که ما داریم اینجا تیلی تیلیق میل ارزی از ایران یه کسی زنگ بزنه بگی ما اینجا داریم شنا میکنیم اونم کنار دریا برنزه میکنیم و اینا میگیم دمتون گرم حقتونه نوش جون تو حالتون حالشو ببرین یعنی انقدر تو ایران مشکلات و مسائل مختلف دیگه هست که دیگه گایی اگه هوا و هوا با مردم مهربون بشه ما این کلی ذوق هم میکنیم این لقط و پتی ها رو بلشون کنین از استرالیا و برزیل اون برای اینا زنی میزنن دل ما رو میزوزونن این ها رو ولشون کنین سعید جان سلام چطوری خوبی؟ سلام فرشی جان مرسی من خوبم خوب. چه خبر از و هوا؟ از آب و هوا فرسی جان ارسود که این روزا توی بیشتر شهرهای ایران البته وضعیت به همین شکل که این دوستمون گفتن و کلن گرمه ها... یعنی بله بله گرمتر شده هوا کلن و از اوایل اسفند همینجوری یهویی هوا شیفت پیدا کرده روی اواقر اردیبهشت بهاری شده آره دیگه بهاری و گرم شده ده ده ده. این روزا مردم تو بیشتر مناطق ایران دارن یه هوای مطبوع رو تجربه میکنن اما از فردا شب یه بارندگی شدیدی تو های ایلام، کرمانشاه و لرستان خواهیم داشت که احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودها توی اون مناطق وجود داره و امیدواریم که اطلاع رسانی خوبی در این مورد انجام بشه و مردم توی مناطق غافلگیر نشن خدای نکرده مم. بجز این دیگه فعلا نکته خاصی در مورد آب و هوا نداریم امروز ممنونم ما البته خب از اینجا اطلاع رسانی کردیم دیگه حالا امیدواریم که دیگه رسانه های داخلی ایران هم اطلاع رسانی بکنن کمتر که, که سعید گفت مردم قافلگیر نشن توی این اگه میگم سیلاب و طغیان رود و اینها ای اتفاق افتاد غافلگیر نشن مرسی سعید جان خانم آقا پسرها چطورین خوبین امروز تولد کیاست امروز هر کی تولد شد دستش بالا اینجا تولد کسی تولد کسی نیست امروز نه امروز تولد اینجا تولد کسی نیست. تولد هر کی هست خیلی خوشبخته خیلی خوشحال می دونم چون تولدش به حاج آقا جنتی توی یه روزه بله یعنی که بین 365 روز سال شما تولد اد بیفته سوم اسفند ما که حاج آقا جنتی هم توش به دنیا اومدن خیلی شانس میخواد خیلی شانس میخواد چون دیگه توی همچین روزی دیگه همه خوشحالند همه اصلا در پوست خود نمی گنجن ما یعنی اینجورییم دیگه نمیدونم حالا شما شما چه جوریید ولی ما خیلی خوشحالیم دیگه الان ببینید این شنواندمون چجوریه؟ چجوری در پوست خودش نمی گنجه؟ ببینید سلام هم بکنیم به امو احمد عزمون امو احمد جون تولد 89 سالگید مبارک ایشالله سال دیگه برنامه 90 دوتت کنه همه از حضور لذت ببریم تولد های جنتی رو به تمامی بشریت از ازل تا ابد تبریک میگم به هستم از تهران به احبه همه شما اگر ما هم حالا در حدی که دیگه وصمون میرسه جشن میگیریم این میلاد با سعادت و دیگه کارش نمیشه کرد چرا که نه آقا پس برو بریم که همه بیتابند برای این جشن جهان از داشتن تو در خود خرسنده است ای ماندهترین ای ماندگاه ترین ای ترین. من به تو از میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکوه ای از فرعون تا امروز. این فرعون بندخت چه ب سال دلایی به سر بود من رفتم چند سفر مینم از نزدی چه خبره؟ ای آ شناغ به آیتی و انفورماتیک. اونجا میرن چایی که تو موبایلشون حساب نامت رو به جام کردن حک میکنن. ای ناظر بر همه صحنه ها اون صحنه برای اینا آموزنده است ای قوم که این همه دشمنان من نمیدونم آدم آدمای اینقدر احمق میشن چطور جن دانندگان یک مدعی قدرت نفهم میشن با ای به فرا حمله اون قدرت منشیابره اول حمله ذات منشیاب منشنای من ذات منشیه فخر و میناودت مبارک فرخونده. چند روز تأخیر میلاد به با سعادت بزرگ مرد ایران زمین آنکه که را هست همیشه در کمین نماینده آقا هم در یسار هم در یمین آنکه بر عمر او حسرت است، کل و مجمعین حسرت آیت الله العظماء احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک اعز می کنیم بله <تصفيق> از برطولد آقای جنتی رو اخیی بار دیگه تبریک میگیم بله اینجا این تبریک تبریک قدیمی بود چند روز با چند روز تأخیر پخش شده بود داری امروز سر موعد پخشی کردیم ما تأخیر نداشتیم خب بریم سراغ برنامه خودمون موضوع خودمون بحث های مبافقین و مخالفین به شرکت در انتخابات آیا بدم آیا ندم های دم انتخابات ایانی گه شماره 988 بدانید و آگاه باشید اگر انتخابات را تحریم کنید کج معظم له و عوان و انصار ایشان نیز نخواهد گزید و اگر در آن فعالانه نیز شرکت نمایید هیچ تضمینی برای بهتر شدن اوضاع وجود نخواهد داشت پس هر کس دلش خواست انتخابات را تحریم کند هر کس صلاح را در رأی دیدن دید رأی دادن دید برود رأی بدهد لکن در نهایت همه ما صبح بعد از اعلام نتایج بیخیال سیاست شده و به سر و کار زندگی خود برگشتندگانیم امزا از این همه رعی میدم نمیدم ها کلافه شده ها و دست این جماعتی که دم انتخابات به سمت های مختلف قش می خسته های رادیو هست فرد دا دا دا دا دا دا, دا. سلام آقای منافیک. سلام علیکم. عفو جو. سلام بندای از سلام علیکم. بله یک کامنت ها رو من دو سه تا کامنت براتون بخونم. خانم شهرلا سلطانی زیر پس فرداzoom ما دوست کرده بودن کامنت گذاشته بودن که میخواستم بدونن تکلیف هواداران پرواقورس شرمین چی میشه پس. وقتی بله. رادیو پس فردا فاز جدیدش میشه. آخ آخ آخ آخ. بله لطف کن فرشید جون ما رو در جریان چندشون کار بزار. ما باید راجب همه چی یعنی ما باید چهار در جریان همه چی بذاریم خب نمیخوام دلم همینی که هست نمیذاریم برد. والا بزن ببینیم حالا چی میشه تمام میشه بعدم بعده بعدا هم لطف کردن نوشتن که گروه جدید که جایگزین تو میشن هم حسابی جا در دل ما دارن فرضید بله ما رو میگن گروه جدید شما رو میگن بعد یعنی حالا ولی... شما شما قرار جایگزین ما بشین والا <تصفح> یه یعنی <تصفح> اتفاق هیچ وقت نمیفته ولی من تشکر می از طرف گروه جدیدمون خیلی خوشحالیم که انقدر دوست کردن مهربانانه بهمون و ما واقعا هیچ وقت جایگزینی شما نمیتونیم بشیم. یه گوشه کوچیک کارو گرفتیم داریم می‌ریم جلو فقط. دمت شما گرم. خیلی من مهربا. چرا تو چرا تو فقط تو میکروفون باز میشه، روشن میشه تو هیچ حرفی نمیزنی بعدو قبل و بعدش تو مخ ما رو من آدم ماخوذ به حیایی هستم آخه. یعنی چی ماخوذ به حیا؟ یه چیز بگو دیگه. چه زندگیه خب من الان یه چیزی میگم. بگم من یه چیزی بگم دیروز راجبه پسورد از زوم صحبت کردیم اسمی از مرسا نبردیم حچی بهش برخورده بود اصلا ناراحت تو اصلا رفته بود تو لگ آخه دستم خودکشی به خدا که... اصلا داره خودش میخواست پارت کنه پایین آتیش بزنه بعد دیگه من شرمندم آره خب کار پسورد زوم و به حال مرسا بخش ویدیویشو خب کار ویدیویشو مونتاژو میکسه ویدیویشو مرسا زحمتش کشید و صداش با الی بود و دیگه باقی با باقی بچه ها دیگه همه با هم دست جمعی کلن از نوشتن به اجرا از جلال به علی به من به سامی به سعید به شهرام همه کمک کرد کارو مرسی, آره مرسی بوش... فرشید برای یاداوری منم حالا گفتی که چون خیلی حرف نمیزنم اینجا یه کامنت براتون بخونم مهنگار توی اینستاگرام واسه ما نوشته راجب اون عکسی بود از اون کاندیدایی که یه پدری به پسرش داره توصیه میکنه که نبری و توصیه میکنه که کاندید وقتی میشه چیکار بکنی این ببینین دیگه ایشون آره. نوشته نماینده شهر ما هستن و تنها اصلاح طلب کاندیدان که نماینده شهر ازنا هستن در واقع کاندیدای شهر ازنا هستن من فکر میکنم این کاندیداگه یه پوستر خیلی معمولی و خوب طراحی میکرد اینقدر مورد توجه قرار نمیگرفت آره اینجوریه واقعا بیشتر تو تو چش اومد دیگه بله آقا علی عباس هم در همین راجبه همین عکس نوشتن که ایشون با همین حرکت رأی تمام گرافیست‌ها رو از خودشون کردن <تصفيق> که در واقع اشاره دارم به پخ شدن این عکس که تو تمام های تلگرام این گرافیست‌های عزیز این هنرنمایی روش کردن و یه نوشته این نوشتن که بعضی‌هاشون واقعاً بی‌نظیره بسیار خوب دیگه چه خبر علی بازم داریم چیزی نه من راه های ارتباطی رو راه ارتباطی رو بگو بذم من سوال بگم ازتون سوال کردیم که بدون استفاده از فوش و داد و بیداد و باقی الفاظ رکیک و زننده لطفاً به ما بگید اگه تو انتخابات شرکت میکنید دلیلش چیه اگه نمیکنید چرا آیا شرکت تو انتخابات رو یک وظیفه میدونید یا اینکه معتقدید اون وظیفه رو لولو برد و باز هم تاکید میکنم ما اونایی رو دوست داریم که عقیده‌شون رو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فوش بدن و آمار راه راه‌های ارتباطی راه برنامه رادیو پس‌برده، تلفن‌های ما هستش دو صف چهارصد و و دو یازده، بیست و چهار صد و ویدیو و سه، و دو صدایی که می‌خوایم بفرستین رو به آدرس این بفرستید. خیلی هم ممنونی از تو ما همه رو چک میکنیم دستتون درد نکن تو به من آخه به تو خوب احساسم همه میدونن من روی تو را تو را حساسم دل قدل تو داستان و, و میفهمم چه گل از گلم میش گفه وقتی میشنوام صداتو نفسم تو میشه با صدای قلبم میشه زیاد وقتی از دور در میای یا که صدای باد ذبولم گوش میشه حتا نمیتونم صدات کنم دوست دارم تا آخر عمرم فقط نگات کنم بیا و عشق من شو اگه پیشی می میرم عادت بیا و عشق من شو اگه پیشی دل میشه فدات بیا و عشق من شو اگه پیشی می میرم عادت بیا و عشق من شو اگه پیشی دل میشه فدات مخالفین شرکت در انتخابات و طرفداران تحریم انتخابات معتقدند کسانی که تو انتخابات شرکت میکنند به جمهوری اسلامی مشروعیت می دن و یه جورایی آب به آسیا به جمهوری اسلامی می ریزن. مخالفین شرکت در انتخابات و طرفداری تحریم انتخابات نظرشونیم. اما طرفدارای شرکت در انتخابات معتقدن که آسیا به جمهوری اسلامی اصلا آبی, آبی نیست اصلا کار چرخوندنش رو اصلا از نظر مشروعیت صدا و سیما و رسانه های حکومتی انجام میدن و از نظر فیزیکی هم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 کی گفته اینجوریه مثلا راژیو روشنکانی فرداش این نری رای بده اینجوری میشه رهبر هم مثلا شدت غم و غصه تو آیسیو بستری بشه نیست اینجوری اینا استدلال های اونایی که موافق شرکت در انتخاباتن اینایی که گفتم تا اینجور داشته بشید حالا از اون بره قضیه ما خیلی خراب رایی نمیاریم اینطوری. زنگ به این حاجی نماینده زاده بزنیم اون تجربش بیشتره چند دوره رفته تو مجلس. کجا بودین شما راش؟ آهاش، باش. این نماینده زاده اگه بتونی کمکی به ما بکنه. بله بفرمایید. الو من موبایل آقا نماینده زاده رو گرفتم. بله, بله. که افتفاد انتخاباتیشون هم همه خصاشون دست منه بله بله من آج آرزومندان هستم از حوض انتخاباتی بله. بقلی وست کنید با آج بله. آقا لطفا بله آج من آیه من تنفاشی رو بدم به هیچون بدیم این بچون نمیشی هم گرفتی آج آقا هستم باشه خم باشه را انقدر گو سری تو جلو راحت باش عزیزه من بده من گوشی رو. الو الو مصار ما خوبید؟ باه باه باه سلام و علیکم حاج آقا شما چطوری؟ خوبید؟ بله خوبم شما خوبید ان شاء بله حاج آقا راستش خیلی تو حوزه ما اوضا خوب پیش نمیره حتی دیشب شام هم دادیم به مردم بنده دو دوره قبل چند بار نهار دادم خیلی بهتر جواب داد. ای چطور مگه؟ آخه مردم شب شام مفصل میخورن سنگین میشن ام. بعد از شما کینه به دل میگیرن، رایی نمیدن. احسان توم چقد نکته مهم می، پس بزوم الان این رمزون بگم عوض کنه منوی غذا رو، آخه آبگوش سفارش داده بودی. رمزون کیه دیگه حاجی؟ بابا رمزون مدیر ستاد انتخاباتی دیگه داماد برادرمه. بذار برادر من دیگه نصیحتی به شما بکنم، من دو ب... تا پیرهن شما بیشتر پاره کردم. به فرمایی تاجی استفاده میکنیم دیگه برای همین تماس که این رمزون اسمش رو عوض بکنه ای خوب برای چی اسمش رمزونه دیگه آج آقا مگه شما رأی نسل جوان رو نمیخوای ها بل حتما میخوام چرا بلی اسمش رو این چند روز بکنه رمزی حمومه دیگه جبونا ها از این اسما خوششون میاد احسند احسند حاج آقا چه نکات مهمی من همین الان زنگ میزنم این نکات رو گوش زد میکنم خیلی لطف کردیم بسیار خوب بسیار خوب بنده برم قرار دستشویی باشگاه ورزشی و حوضی انتخابیم افتتاح کنم دیرم میشه خدا قربان آمده. مرحمت زیاد حاجی استفاده کردیم واقعا خدا نگهده خدا خوبین رمزون رو بگیرم. این حالا ببینیم که هاجاغا درست میگه این الو الو رمزی رمزون چیه تو از امروز تا آخر انتخابات اسمت رمزیه فهمیدی رمزون مرد چی جواب زنت با من ببین گوش کن رم... رمزون رمزی گوش کن جواب زنت با من ببین ساکت شو ببین چی میگم سری میرید تالار پذیرایی میگی بهشون یا غذا رو عوض کنن یا اگه نمیشه نخود لوبیا آب گوشت رو کم کنن همین که میگم ب... ب... با من بحث نکن رمزی رمزون هر چی هستی رمزی تو یه م... راهان یه منشی بعد هجاب روسری من عقبم پیدا کن رمزی ها لازم میشه تو این چند روز بودو برای تو نه برای من بچه پر رو خدا ببینم خدا افراز خداحافظ دلنگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. امران ملکمتی سلام طرفتی جان سلام به همگی چه خبر رو داری برای ما و رادیو پاس فرزدی شورای اکران امروز اعلام کرد که 26م اسفند رسما اکران نوروزی فیلم‌ها شروع میشه اما معلوم نیست چه فیلمایی قرار اکران بشه و اینکه قیمت بلیت ممکنه برای سال جدید بشه 10000 تومان اما یکی از فیلم‌های نوروزی از چهارشنبه نمایش شروع میشه به اسم من سالوادور نیستان به کارگردانی منو رهادی که بریم بخش از صدای فیلم با هم بشنویم I am not Daesh Daesh? زبانم بلد نیستم دقیقا این رسی که از بسطر نصفش گلن چقدر شبیه شماست نیستم؟ این که چل کجا شبیه منه این زن بچه من اونجا رو بینن نماز وحشت باید دفنن میری بسته چیه کل نفاشه I'm not Salvadore من Salvadore نیستم منو برداشه اگردی بسطر کنسرت ایبی خکتون سرم کنن بیا بایی مچه این ایبی که ها نبینی بل، بخش از فیلم من سالوادور نیستم ساخته منچر هادی رو شنیدیم خب میگفتی کامراه باجه به فیلم این فیلم تو شش ماه گذشته فارسی جان چهار بار اکرانش اعلام شد تا اینکه بالاخره ساخت تکلیف شد رضا عطاران، یکتا ناصر مهدی مهرابی، جیلا صادقی و ریوالدو فوتبالیست مشهور برزیلیه بازیگری اصل فیلم هستن و به خاطر مضمون کمدیش احتمال لیل جزء باشگاه میلیاردی‌ها باشه. البته اگه بلیت اگه بشه ده هزار تومن اونطوری که گفتی دیگه خیلی از فیلم‌ها از میلیاردی میشن دیگه. تو آه... آمریکا هم راست بلیت‌ها رو اینجوری بالا پای می رو؟ بولا تو این شش سالی که من هستم نه کاری به این چیزها ندارن نه به زمان فیلم اهمیت میدنن نه اینکه چقدر خرج شده مثلا برای مثال شرای یعنی برای همه مساوی برای مثال الان فیلم ددپول که کل بوجه ساختش 58 میلیون دلار بوده هفته دومه که سردنشین باکس آفیس این هفته فقط توی آمریکا 55 میلیون دلار فروش داشته در کل دنیا 492 میلیون دلار تازه به خاطر صحنای خشن فیلم خیلی از کشورها اذن نمایش بهش ندادن بسیار ممنونم ازت کامران عزیز باد خدافیزی می‌کنیم و میریم به اتفاق ساوند این فیلم رو دد پول گفتی درسته اسمش دیت پول بود دد پول The این فیلم رو با هم می‌شنویم یا موسیقی فیلم این فیلم رو تا فردا شب خدا نگهدار hey yeah, No, not you, you, the bow-legged one, <laughs> yeah, what's your name, damn thing, that sounds sexy, uh, here I go, here I go, here I go, again girls, oh, yeah. what's my weakness, Man. Man. okay, they're chillin', chillin', mindin' my business, your swords I looked around, سلام ویکوسی دوشنبهشب ر آب ضمنه وحشت از رسیدن دوباروری دامنه گسترش گرد غاب تا اللبورز با امرووی بر سرخط مهمترین خبراب امروز و امشب آغاز می نوماین افزایش دهبراوری متادان خیاابری کشور 8 سال گذشته و نظر کارشناسان آافسان که خدار شکر تحریم ها روی یه فقره اثر منفی نذاشته بوده. محکوم شدن سی دو نفر در عربستان به جاسوسی برای ایران و افزایش نگرانیها از اینکه حالا تو عربستان دوباره بسات گردنزنی را میفته تو ایران هم یه سری آماده میشن به سفارت نمادین عربستان حمله کنن و احساب نظر وزیر خارجه ترکیه مبنی بر عدم حضور زمینی این کشور در میدان جنگ سوریه و نظر فعالان و جنگ خب معلوم شما الان در حال رنده کردن, کردن کرده از این مهمترین سر خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار خوشالحامنم بای بای با سلام رئیس مرکز سنجش آموز شکشور به خبرنگاران گفت معدل امتحانات نهایی دانش آموزان متوسطه در دو سال اخیر به نمره دوازده کاهش یافته است این در حالی است که به گفته ایشان تلاشها برای بالا بردن کیفیت آموزش در کشور آغاز شده تا معدل امتحانت نهایی دانش آموزان به چهارده یا پانزده ارتقای بعد بنابرای گفته ای یکی از کارشناسان بازگرداندن فلک و شیلنگ به مدرسه ها یکی از بهترین راه است که با آن می توان میزان وری آموزشی دانش آموزان را بالا برد و افزود همچنین روش هایی چون گذاشتن خودکارلای انگوشت بلند کردن دانش آموزان خاطی از موی سر و حبس کردن آنها در زیر پله مدرسه هم می تواند در این راه به مد... مسئولین آموزشی کشور کمک نماید یه آقای میکروفونت حالا اینا چیه؟ آدم فکر میکنه داره فیلم ترسناک تعریف میکنه بچه باید کتک بخوره ای... بول بول اه. یعنی چی بذارید گهنانی کنری سسول بازیه روانشناسی کودک و من دیگه تاعت ندارم اینجا بمونم خدافید بری با بریو حساس بازی در میاره واسه من خوش مدی بریو بله، علی از طریق خطوط تلفن در خدمت یک هوشاوش مشکل گشایی برنامه یعنی برادر مشکل گشا از بچه‌های ناف وزارت هستیم تا مشکلات ما را. گو چوی نموف گند بله به مادر مشکل گوشا صدای ماله داری بنده بله هم با ام. سلام به واسطه طیبه بل. امام امت و امت با ارجوی طول عمر برای مقام معظم رهبری در خدمت شما هستم یا دیگه... علی پیغام پسغامی چیزی برای بله کس کستیگی نداری خجالت نکش بگو من میگم بفرمایید در خدمت شما هستم خب مشکل جان بگو ببینیم از فضای تبلیغات انتخاباتی چه خبر بله خب ما وان ترکم مستظر هستیم چند روز از شروع شده تبلیغات و مادران و خواهران کندیدو ام. در یک فضای سالم و کاملا دوستانه در حال تبلیغ ایده ها و تفکرات خودشان هستن حجب پس خیلی سالمه فضای دیگه بله. و چی میگن این گزارش ها که بعضی از کاندیداها ها مثلا تو یکی از شهرهای جنوب آزربایجان غربی بله. بین طرفداراشون برنج هندی و تبلت های چینی و اینا توضیح کردن این چی؟ البته بنده این گزارش ها رو دریافت کردم خ... و باید اصلاح بکنم چیزه که شما فرمودید رو چون برنج که توضیح شده بود برنج زفرانی هندی دان بلند مجده بوده که شما فرمودید فقط هندی نه comment دقیق نبود دیگه. یعنی الان مشکل ما اینه دیگه. که برنجش دانه بلند بوده یا دانه کوتاه مشی من میگم ببینید اطلاعاتی که از رشنه داده میشه باید دقیق باشن اینا دیگه ها میگم خب کارای کاره رای خریدن دیگه درست نیست که این ببین همونطور که میگم مقام معظم رهبری فرمودند هدف اینه که فضای انتخابات با یک شور و نشاط خاصی تدابن باشته باشه بر کشمر که داره با هم دلاله آخه با اینجور تبلت بله مشکل تازه من یه گذرشی دیگه خوندم بله. توی یه نقطه دیگه بله بله. به یه نامزدی طرف داراشو میبره تالار بله. عروسی بهشو شامانه میده شامانه هار عروسی هم مفصلتر این جوری؟ بالا دیگه بالاخره هواداران اون نامزد مورد نظر گرست نمیشن و با توجه به فضای پرشور انتخاباتی باید آنها راشد نمی آخه که با دیس برنج رای بگیری از مردم دیگه پس فردا که میره تو مجلس با دیس برنج قانون تصویب میکنه دیگه, دیگه. آخه, آخه نمیشه که تو... از قدم سفارش شده که بخورید و بیاشمدم اشراف نکنه اینو عزیزان ما نظر داشته باشه ما هر چی این مشکل دلکه... میگیم نره این میگه ماده است بله تازه خبره تو مازندران تو بعضی از مجالس بله. عروسی خانم های کاندیدا ها میرن تو زنونه برای آقاشون هم تبلیغ میکنه. بله بس. خب ین یکی از نشانه های ملوغ جامعه مایه تای میشه در ظرفیت مجلس عروشی هم برای انتخابات خوابات استفاده بشونگه به مشکل میگم تو چیزی زدی امروز حالا بله. هر چی میگم تو ینی یه نمید شیرین میای روش دیگهب ف تو خواباتی دیگه ا خب اگر اجازه بت بنده الان درره مجلس تبلیغات اونسان هستم الا باید برم در تجای های اخلای اینشان سخن بکنم دیگه وقت ندارم مشکل بی خیالات مهمور دولتی نمیتونی این کار بکنی الو الو الو, الو. صدای بنده میگم تو مهمور امنیتی هستی نمیتونی ولی کسی تبلیغ کنی الو شما رو ندارم بند بمیری بمیری ای ولی ولی لشکم اما این اصلا چیزی الو, الو. تشکر الو. شما با تشکرات توجه شما و شبید دیگر و برنامه دیگر و مشکری دیگر خدا نگه الو الو عصبانی نیمی چی شده یار دو سال تو را بوده هشتا اقیانوس و پونزه حتا دریا تا بیابون رد شده رسیده اروپا خب این همه بدبختی کشیده هشت سال باد. تو کم بوده 16 سال کورس پناهندگی چول کشیده که مثلا چی؟ ادرست اون دو دولت اون دو خلاص بشه حالا تیپ روشن فکری واسه من ومند شناسنامه میگیره ازش میره دم سفارت ایران صف وا می‌میشه میره بده, بده بابا مغزت واه تو, با... تو دیگه چی هستی آقا اذیت نکن با قربون شکل چه خبر سکت مکزه میکنی چرا اینطوری میکنی آقا چیکارشون داری خب چرا انقد اذیت میکنی خودتو بیخیال خیال اونا هم بالاخره دلایل خودشونو دارن دیگه آدم آقا اصلا از ایران که میزنه بیرون طرز فکرش عوض میشه بعضی وقتا اینا هم همینطوری شده والا اینقدر جوش نزند.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 این طرف هم در واکنش به اقدام آقای الیاس نادران نماینده اصولگرا و ارزشی رو فرستادن جلو که ایشون حمله دولت رو بیان و اینجوری خنسا کنند عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد و دائما رقبای خودش رو محکوم میکنه نباید فراموش کند که برادر ایشان با حمایت آقای مشائی و بقایی نزدیکترین افراد به رئیسجمهور سابق بیشترین امتیاز رو در تأسیس هلدینگ گردشگری در کشور گرفتند و بر مبنای آن بانک گردشگری رو درست کردند به عنوان منبع مالی پشتوانه کارهایی که بعد از اون کرد او او او یعنی قضیه رو خانوادگی کرده شو پای برادر رئیس جمهور کشید وسط و دیگه کلا کلا این برادر آقای روحانی پاشنه آشیل شیخ حسن شده یعنی هر کی میخواد شیخ حسن رو به چزونه به این بدبخ برادری گیری میده بالاخره میگم رد میشه تو مسیر و اینو خلاص این بار هم آقای الیاس نادران حمله وزیر کشور دولت شیخ رو اینجوری جواب دادن اما از اونجا که شیخ حسن قبلا در مورد قاچاق هم یه به سپاه انداخته بود و ما هم تو همین برنامه هم پخش کردیم صدا شو آقای نادرانم اومد توپ و دوباره انداخت توی زمین شیخ حسن و گریزی زد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و اینجوری گفت چرا بعد از دو سال دولت حتی آین نامه های اجرای این قانون رو عملیاتی نمیکنه؟ چون اگر این قانون عملیاتی شد اول باید برن سراغ بزرگ پاچاخچیانی که به ادعای خود دولت بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا وارد این کشور می کنن و کمترین اثرش این است که جوانان تحصیل کرده ما هر روز بیکارتر میشیم. بله چیزی که عوض داره گله نداره کلا ایشون 0 تا 100 قاچاق کالا و هر که شیخ در لفافه به سپاه نسبت داده بود و حواله داد به خود دولت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 سپا خیلی علنی و در سطح کلان خب همیشه درگیر فعالیتهای اقتصادی بوده و این هم پشت سرش حرف و حدیث هست اینقدر حاشیه امنیت داره که تا امروز حتی یه نفر سپایی هم مورد سوال قرار نگرفته اینجاست که معنا و مفهوم حریم امن ولایت مشخص میشه و معلوم میشه امام چرا فرموده بودن که ای کاش من هم یک پاسدار بودم حلام بازم یه استیک دیگه یا بهتر بگم یه مینی استیک دیگه شروع شد البته روزای شنبه ی شنبه و دوشنبه مینی استیک دیگه استیک اصلی در واقع تو برنامه س شنبه یعنی فردا با حضور شفا و پرودوسرهای برنامه اجرا میشن و یادتون نره اگه میخواین روی داغترین گاز استیک افتاد حاضر باشید فقط امشب و فردا صبح رو وقت دارید تا ماما تماس بگیرید و خودتون رو توی جم استیک های س شنبه جا بدید ادامه میدیم استیک همون مینی استیک امشب رو با تلفن های شما راستم دستور کباب سلطانی دورو رو بهتون بدم تشکیل شده از فیله گوساله مثل کباب برگ و روی اون فیله گوساله گوشت کباب کوبیده رو بعد به صورت خیلی ماهرانه بذاری و بتونید روی منقل کباب کنی به صورتی که موقع کباب سیخ میکشی برگ و کوبیده به هم چسبیده است آپتین هستم از کانادا آشپزه دو تره من مجگانم میخوام واسط در مورد یه غذای بهبهانی بگم اسم غذام چیه برزنگک برزنگک یه پر پره حبوبات هر حبوباتی که دلت میخواه ما قضایی که شب برای شما مخواهم توضیح بودم اسمش هست ماچی فسران کریم یک آلامه پیاز خرد خورد, خورد میکنی میریزی تو قبل من پیازار تفمدی همچنی تلایی که شد و گوشت مایچه گوزفندیره قطع میکنی مندزی تو قبل مه. بهترین غذای دنیا به نظر من لوبیا پولای پرملاته کفش یه سیب زمینیه. یه نمه روغندار بذاری بعد با ماست و ریهون و شاهی و تروبچه بحبه مگه از این خوشمزده ترم داری اینم از بینی استیک امشب یادتون نره از شما تا استیک فقط یک راز فاصل است ایمانی لکنخ بایانا ملتی tariş hayla geçmiş dileğetle yatallar da oyandı ışlayı mesğün dünya elâçi yer saldı البيات تتطير عزت اما معتقدین به شرکت در انتخابات و مخالفان تحریم میگن هیچ وقت با تحریم کردن چیز درست نشده و هر وقت ما میدونو خالی کردیم جناه اونبری با قیال راحت و بیدرد سر اومده و همینچیو قبضه کرده و پدر مردمو در آورده اینا معتقدن انتخابات و صندوق رای تنها راهیه که میتونه باعث اصلاحات و تغییر دادن شراگل بشه خب به اینا حرف زدیم اما مخالفین شرکت در انتخابات اینا معتقدند که همون اقتدارگراها و اعوان و انصار رهبری هم این مسئله رو میدونن که مردم با صندوق رای میتونن تغییرات ایجاد کنن و کسانی رو به سر کار بیارن که معظم نظرش به نظرشون نزدیک نیست و برای همین هم فیلتر شرای نگه گذاشتن پشت صندوق که قبل از ما خودشون انتخاب ها رو کرده باشن یعنی وقتی حذف کلمه مزاهم و دردسر ساز جمهوری از ترکیب جمهوری اسلامی مقدور نیست خب حکومت اومده اینجوری اسم و شکل ظاهری انتخابات و صندوق رای و حفظ کرده ولی خب در عمل کار کرد و تاثیرش از بین برده این بندهای خدا تحریمچی چی هم خب راست میگن دیگه آقا با کدوم اصلاحات الان دوم خورداد خرداد 76 تا امروز چقدر اصلاحات ایجاد شده صندوق رأی این مدلی ظاهرا فقط تونسته اصلاح طلبا رو اصلاح کنه تا اینجای کار خلاصه هر دو گروه چه معتقدین به شرکت در انتخابات و چه معتقدین به تحریم انتخابات حرفشون منطقیه یه جورایی یعنی شرایطی جوری شده که عملا نه معتقدین به تحریم و نه معتقدین به مشارکت عملا قدرتی برای تأثیرگذاری ندارن و معظمله هم بالا نشسته حال میکنه که چقدر بصیرت داشتی که تونسی چون این شرایطی رو به وجود بیاره ای تو دلش میخنده به خودش میگه آوری آوری آوری آوری فقط 3-4 روز دیگه مونده به انتخابات وقت من هنوز نمیدونم به حرف کی گوش بدم ننجونم که میگه بعد رعی داد یا سرعی دوستم که میگه رعی بدیم که چی بشه امروز از جفتشونو گفتم بیان خونه ما بحث کنیم من به یه جمبندی برسم این روزای آخری ننجون میگه آدم باید حافظه تاریخی داشته باشه هر جا مردم رفتن پای صندوقای رعی تحوالی اتفاق افتاده سوریو گفت چه تحولی اصلا بریم رأی بدیم که چی بشه باز اینا سر کار بمونن من گفتم یعنی تو میخوای انقلاب کنی سوریا گفت نه بابا بهشون رأی ندیم خودشون از مشروعیت میافتندمشون رو می‌ذارن رو کلشون میرن گفتم ننجون نظر شما چیه گفت این رفیق جوونه هیچی از تاریخ نمیدونه ولش کننه ننه گفت هم شما میدونین کافی مادر بزرگ ننجون گفت مادر بزرگ خودتیو جد آبادت من ننجونم اون ننجون شما اینجوری میخواین آدمو راضی کـوینن مرن رأی بدن؟ گفت ولشون کن ننه. اینا یه مش آدم ساده انگارن که نمیفهمن با رأی ندادنشون هیچ اتفاقی نمیفته، جز نشون دادن بی‌مسئولیتیشون. گفتم اون شما که خیلی مسئولیت پذیر میشه توضیح بدین چرا رأی میدین؟ گفت والله قبلا واس این بود که یه عده رو بفرستیم مجلس امسال ولی برای اینه که نذاریم یه عده برن مجلس. سرعی صداش در اومد که میبینی چه منطقه خنده داری دارن اینا ننجونم دوباره رفت بالا منبر در مورد حافظه تاریخی که مردم ندارن و این چیزا خلاصه که من هنوزم نمیدونم چه کنم با این رأیم والا. فری برز غریب سلام چه خبر ها؟ سلام سلام به همگی فرشت جان دیروز بعد از قهرمانی تیم فوتبال ایران در آسیا که تو ازبکستان رقم خورد به مبارکه مبارک تیم ایران آره مبارک خیلی معترجم تیم ایران خیلی با احساس و با دقت حرفای کاپیتان تیم چشاورز و سرمربی تیم آقای نازما شریعه رو روبروی رو خبرنگارای خارجی ترجمه کرد فکر کنم شنیدنش شنیدن این نو ترجمه برای شرمنده ها خالی از لطف نباشه بشنو بازی بازی خیلی خوبی بود the game was very good game. این بازری بود که این ما خیلی سختی کرده بودن Your fans or in the field? به تیم ملی اوزدگستانم تبریک میگم بازی خیلی خوب و بنمایش کان your fans and your team for a very beautiful and excited match ولی حق ما قهرمانی بود but for right was champion ولی مسابقه ثابت کردیم که حالا حالا ها میتونیم قهرمان آسیا باشیم but we said with champion we are everything قهرمان champion ولی برست کنم بهتر از آقای کفاشیان انگلیسی حرف میزدت آره یاد خودم افتادم من دیدون موقعی که حاضر اومده بودم آرماد آره بند خدا خب دیگه چه خبر؟ یه خبر جالبم داشتیم در مورد توافق دست جمعی بازیکنهای سرخابی برای خدافزی از خضای مجازی در اعتراض به فهاشی و بیعدبی برخی از حوادارا اونطوری که در سایتها اومده بازیکنهای دوتیم پرسوریس و استقلال تاکید کردن تا زمانی که و تنبز احترام ها به فضای مجازی برنگرده، نگرده اونان بر نمی گردن به این فضا. خب پس با این وضع دیگه این بازیکنا رو نخواهیم داشت در کل تو فضای مجازی. چون مودب شدن بعضی از کاربرها، از دوختن سوراخ لای اوزون هم سختره یعنی این فکر کنم آره، دیگه بعد باعت... آره. پسی آره. آره. تا تو این فضا هستیم، فضای مجازی یه خبر مربوط به این فضا بگم برادرای خبرگزاری تسنیم امروز در ارتباط با خبر دو هفته پیش که فوتبال قرار ماندن کیروش در تیم ملی ایران به صفحه اینستاگرام آقای روحانی رئیس جمهور حجوم بردن یه خبر با منتشر کردن چی نوشتن برداری تسنیم نوشتن اون حجوم مردمی ساختگی بوده و این مردم نبودن که به صفحه اینستاگرام رئیس جمهور حجوم بردن بلکه این کار کار یه ربات بوده عجب حالا ان ربات این دفعه به صفحه خودشون حمله کنه دیگه انقدر از این تخیلا نکنه خیلی ممنونم از زاد فیروز و غریب باد خداحافظی می‌کنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار شال اما چند روز پیش یه سخنرانی از یک عالم جلیلالقدر دیدیم که ظاهرن ایشون در حوزه موسیقی تحقیقات زیادی کرده بودند و به نتایج شگرفی هم رسیده بودن گوش کنیم اول صدای این عالم جلیلالقدر رو در خواهر مطلقه آلات موسیقی همه حرام همه حرام همه حرام هم. تمام مراجع تقلیب به اتفاق فرمودن فقط یک نیه اون هم نیه رو اگر به جنبه وزنو اندوه و گریه و ماتم و پند و نصیحت باشه اشکال نداره اگر همون رو هم بگیرن در جهت خلاف اونم باز اشکال داره بله. اصلا نفس این آلات موسیقی حرامه نفس این آلات موسیقی حرامه بله دیگه آب پاکی رو ریختن رو دست همه علاقه‌مندان به موسیقی از بیخ کلان آلات موسیقی رو حرام اعلام کردن دیگه البته بجز نی به خاطر اینکه خب مثل بقیه سازا دنبل دینبوی نیست بفرمایید ایشون برای گریه و زاری و وزنو اندوه ساخته شده کلنه نظر آقای اون گریه و تو سر و زدن و عشق و ماتم همیشه حلال حلاله دیگه راست میگه دیگه آخه یعنی چی همش دنبالو دیم با؟ اه بسته دیگه شهرام تو هم دیگه فقط موسیقی حلال میذاری یا فقط نهی آقا بذار الان نهی بذار نه نه این موسیقی آفرین آبه همینه از این به بعد همینه برنامه با. صدا و از قدیو پاسوردا میشنوید. با با. وایسا وایسا یه لعنتی دیگه این سامی چیز داره توش. این یه،, یه ذره این تم تنبک اون پشموشش داشت. این من فکر نکن نفهمیدم تنبک من دارم میشنوام آقا. این نکن اینجوری آقا جان آتش جهنمو اینجوری به گوشای شرمنده ها فرو نکن. نه خالی بذار نه خالی بذار یه اشکی بریزین گونه ها اونم بخشیده بشه. <تصفح> بچه‌ها گری همه همه غصه همه <تصفيق> گریه پاسور سیدی سیدی پاسور بیا بله خانم بله خانم چه چیزی چیز نیاز داشتین فیلم عرق و زر و رغ شما هر چی بخواید دارید نه نه نه نمیخوام فیلم خصوصی معرزا گلزار زیر دوشم رسیده نه؟ جدیده جدید کامل نه بابا ما از این چیزا نمیهام داجه شد آخه چه رنگ کارو خاطر کردید اصلا قابل آشا سراغ نرم نه آقا قابلی چی آخه کیه پایه‌مال شرخر میاد رو بزنم مثل کنم برام کی از ای بابا تو کار موسیقی از من پیانو رویال نخواست. آه سه شدات بیاد بیه و دوستن ها خلاف من ندی در این دایره تون بکار درامینه. نه متشکرم اما پیانیست. است باب گفتم اسب بشنام و شر خونم برای نصب اینجا. واسطه درد زرمیش است و گرفتاره. خب پس باب کجایم تو ام پیانو تهیه می‌کنم. است باب گف باز. بابا جان بلند نگو از انجوامش بشنار مسیا داره بر برو تو و بکن چه میدونم. برو خواهی معرفی کن به فراغ نکن سیده سیده پاسدور شنگ میارمان امروز از قول وزیر کشور تیتر زده بود که نگوییم در انتخابات عده‌ای انگلیسی‌اند. اگه بین اینایی که شورای نگهبان با موچین تایید صلاحیتشون کرده این همه انگلیسی پیدا بشه، قطعا اونا که تایید صلاحیت نشودن، همه اسرائیلی و صهیونیست بودن از. روزنامه جهان صنعت از قول حداد عادل امروز تیتر زده بود که صدای پای مجلس ششم شنیده می شود آخه مجلس ششم؟ یه چیزی بگو، بگونجه قربون شکلت دیگه. ایشون یا توهم زدن یا فهم میکنن قرار علی مطهری نقش احمد بورقانی دوران اصلاحات رو بازی کنه برای اصلاح‌طلبا، چیزایی میگه. و روزنامه رسالت به نقل از احمد خاتمی امروز تیتر زده بود که در دفاع از ولایت با کسی شوخی نداری. آقا شما بگو سر چی شوخی داری ما تو همون زمینه باطن شوخی کنیم به خدا انتخاب های امشب رسیدیم من و تو هر کدوم ناگزیر بارها و بارها دست به انتخاب میزنیم انتخاب هایی که گاهی مسیر زندگیمون رو عوض میکنن که گاهی ما رو به جلو و گاهی هم به سمت نزول یا حتی سقوط میکشونن گاهی هم به سادگی انتخاب نکردن رو ترجیح میدیم انگیزه این انتخاب چه امید و نگاه رو به جلو باشه و چه خستگی و دل سردی در اونها چیزی از جنس فردا و پس فردای ما پنونه و ناگزیر روزی بالای نردبون زمان میستیم و به تک تک این پله ها فکر میکنیم پله هایی که خوب یا بد انتخاب ما بودن و امروزمونو ساختن از این تصمیم میترسم در افکارم غم نانست دلم در کاغذی مرموز در این صندوق پنهانست از این تصمیم میترسم که مار از آستین رویا و دست معرک گیری کلید جبراد جویا I'm so sorry, I gotta go now. کرسی در تعید کسی که فکر کرد است بعد نمایی خوب پیلا کرد به جای دیدن یک فیلم میان پرده تلاششا کرد.